بسم الله الرحمن الرحیم سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی فلسفی موضوع سخنرانی امامت جلسه 21 الحمد لله رب العالمین بشال الله على سیدنا و نبينا و شفیع دنوبنا بالغاسم و محمد لا غريب شيء طيبون عطاهم سلام عليكم يا اخوان اخوكم اجتمعنا لو من بعدين و می فخر را کند تعالی اهل بیت پیغمبر صلوات و علی را بیشترین صفتی اعتراف فرموده که آنها را از هر پلیدی و باطشی و از هر پلیدی و ناپاکی دور داشت و اونها را پاکیزه از هر عیب و نقصی قرار داده <تصفيق> و بزرگان و علماء شیعه به این آیه شریفه استدلال کردند برای اسمت زسوات آوالی واله وحبه تو و این آیه از میش روایات متعدده شاید متجاوز از هفتاد روایت از طرق عامه و خاص در خانه عسلمه زودی به پیغمبر برنااز شده و چون که قبلا از کردیم پیغمبر فرمود که حالا در بعضی از روایات به خود امور سلمه فرمود در بعضی از روایات هم چاید به دیگری فرمود برو علی و فاطمه و حسن با حسین رو خبر کن که بیام تو خانه و توی اتاق امور سلمه بودیم. او هم رفت خبر کردیم بزرگان رو با آمدن پیغام اصابه علی و یک عبای پشمی یک نمیدونم حالا اسم شد چی باید بدارین مثلا این جاجین توری که تا با پرشن بافته بودن کشید روی اینها و ارز شد یا اینها احلوی که من هستند و اینها دفاع کننده از من هستند این را تاهر و پاکیزه قرار بده اون بسلمه چنون که کردیم و تو روایات سنه و شیعه داره اون ارز کرد که یا رسول الله من هم جز اینهام فرمود نه تو زن پیغمبری و تو برخیر هستی ولیکن جز اینها نیستی شاید ارز کردیم متجاوز از هفتاد روایت از طروب عامه و خاصه نقل شد بنابراین جبریل نازل شد و این آیه رو نازل کرد. از این آیه شریف استدلال کردن علماء شیعه برای این که پاکیزه از هر پلیبی و قیص و طاهر و طیب از هر درگوشت گناهی هست و به مناسبت بحث خودمون که ما باید از کی دستورات خدا را بگیریم و بعد از وسیل خدا سر و, آه و, آه و آه دنبال کی باید برویم این آیه رو تحفی کردیم که خدای تعالی امیر و زهرا سوام الله علیه ها و حسن و حسین رو اونقدر متیقنه حالا روایاتی که داریم تا آخر عمه حالا قلعه متیقنش درباره اینها نازل شده و اینها را پاکیزه قرار داده است از هر رئیس و پلیدی از کردیم به اینکه که از و پلیدی ها قرار داده اطلاقش به قول طلبه از هر رئیس و پلیدی در اعتقاد از هر رس و پلیدی در اخلاق از هر رس و پلیدی در اعمال پاکیزه قرارشون داری یعنی شرک و کفر و نفاقی که مربوط به اعتقاد است در این حال نیست اعمالشون اعمالیست پاکیزه یعنی گناه، ظلم، دروغ، کذب نه در گفتارشون، نه در کدارشون، نه اعمالشون ریس و پلیدی نیست و در اخلاق اینها رو پاکیزه قرار داده است از حسد و کبر و اود و, و از نشات سایر صفات رزیله ریا و همسال زاله اینها رو پاکیزه قرار داده پس بنابراین اگر چیزی به ما گفتند راست میگن اگر اعتقادی بیان کردن است موافق با قرآن انحرافی در اعتقاداتشون نیست. اگر چیزی گفتن مربوط به اخلاق صهیح گفتن و اونگونه که خدای تعالی فرموده و اونگونه که او دوست داره اینها هم ما رو به اون راه هدایت می پس بنابراین اگر از یک شیعه بپرسند که چرا شما دنبال اینها رفتید میگیم خدا اینها رو پاکیزه قرار داده و ما رو هم امر کرده به دنبال پاکیزگان بریم اگر کسی رو پاکیزه قرار داد یعنی هرچی میگوید صحیح است هر اعتقادی که دارد اعتقادش مخ... موافق با قرآن و موافق با واقع است هر کاری که انجام میدهد عملش عمل صحیح است و مرزی خدای تعالی است اگر انحرافی در اینها باشد اینها ها داشته باشند، پلیدن تاهر نیستن پس بنابراین ما دنبال کسانی رفتیم که تاهرن و خدای تعالی اینها رو تاهر قرار داده و پاکیزه قرار داده بنابراین به قول طلبه ها قولشون و فعلشون و اعتقادشون و حرکات و سکنادشون خالی از انحرافه انحراف در کار این ها نیست که این مطلب رو روایتش رو البته با اون تفصیلش نمیگم این کلمه رو عرض کردم که رسول خدا به امار فرمود و این روایتی که عرض کردم اون چرام تذکر دادم به امار فرمود که سنی و شیعه این روایت رو کردم به امار فرمود اما اگر دیدی تمام مردم دنیا از راهی می و تنها علی از راه دیگری می روید تو اون راه را انتخاب کن که علی از اون راه می روید. او تو به گمراهی نمی و از هدایت دور نمی کند این همین معنای پاکیزگی و تهارت هست عملش حجت برای من قولش خجته برای من به اعتقادش کجت برای من بنابراین این ما دنبال این آگاه‌ها رفتیم این مطلبی بود که غرضمون از استدلال به این آیه راجع به مبحث امامت این جهت بود که در امامت در رو مذهب شیعه بحث است یکی اینکه ما بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله از کی باید دینمون رو بگیریم و مطالبی که به احتاجیم از تفسیر قرآن و از بیان اعتقادات و از احکام و از اخلاق و غیر که مربوطه به دین است، از کی باید گرفت؟ آیه شریف این اینها پاکیزگانند، اینها کسانی هستند که خدا اینها را از هر پلیدی دور داشتند بنابراین ما دنبال این آقاها میدن. سنی ها به اشکالاتی دارن راجع به این آیه اینا رو یه مقدارش هم گفتم ولی چون هم فاصله شده بود هم هم وضعی از رفاقا شاید تازه اومدن مواقع ممکنه برای اونا دیگه قابل استفاده نباشه سنی ها به ما اعراد کردن که این آیه مربوط به زنهای پیغمبره نمربوط به اهل بیتی که شما میگی، زیرا این آیه رو ملاحظه بفرمایی این آیه در بین آیاتی واقع شده که خطاب به زنهای پیغمبره اولش این است که یا نسا النبی این کنتن نتردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتع کن و کن سراخن جمیلا از زبان های پیغمبر شما طالب دنیا هستید، پول می‌خواد، چیزهایی مربوط به دنیا طالب هستید، بیاین من یه چیزی بهتون میدم و یک متاعی به شما میدهم و طلاقتون میدم برین و خوندون برین به اگر اراده خدا و اراده رسول خدا رو دارید، اینا رو میخواید با من و بعد هی هرا نسان نبی اگر شما گناه بکنید گناه شما دو برابر دیگران اقاب داره یا نسان النبی قردفی بیوت کن نه ولا تبرج نتبرج از جاهلیت اولا تو خونهاتون بشینید مانند زمان جاهلیت که زنها را می و کارهایی انجام میدادند شما مانند اونها نباشید این خطاب به زن خطاب به زن ها بعداً هم می‌فرماید یک دفعه این وسط می‌فرماید انما یرید الله لیذهر بكم الرسا اهلل بیت و یطهرکم تطهيرا اینو این وسط فرموده دو مرتبه یا نساء نبی. پس قبل از این آیه و بعد از این آیه خطاب همه به زن های پیغمبر این آیه هم به قول طلبها با وحدت سیاق اقتضا میکند در سیاق سایر آیات باشه همونگونه که سایر آیات مربوطه به زنهای پیغمبره اینم مربوطه به زنهای پیغمبره خدای تعالی زنهای پیغمبر رو پاکیزه قرار داده است نامش اشکالی به ما میکنه مطلبی را که جوابش رو دادیم ولی یکی دو تنده نکت نکتهی شاید باقی مونده مطلبی را که قبلا ارز کردیم این است که در این آیه شریفه نمیتوانیم بگیم این آیه مربوط به زنهای پیغمبر چرا نمیتوانیم بگیم؟ زیرا که ما قبل این آیه و ما بعد این آیه که خطاب به زنهای پیغمبره همه با زمیرهای جمع مؤنس یا نسا نبی لستن که احد من انسا یا نسا انبی انکنتن نا تردن الحیات از دنیا و زینتها فتعالین اومدت کن و اسرح کن سراخن جمیلا اینو زمیرهای مؤنسه عربی و فارسی خیلی چیزاش فرق داره یکیش اینه که ضمایر هایی که به بر برمیگرده یه جور دیگاست ضمایری که به مذکر برمیگرده یه جور دیگر بنابراین این اولای آیا های آی آی آی آی آی قبل از این آیه رو که نگاه کنید همه ضمایرش مؤنثه آیه آی بعد از این آیه رو نگاه کنید همش ضمایرش مؤنثه این وسط همی یک یا ببینیم انما انما يريد الله ليوسف ثبان انكم مرج ساء للبيت وليفكركم تسبير <تتفیره> میتونیم بگیم این آیه مربوطه به زن ها خب چرا جهت عبارت تغییر پیدا کرد چرا ضمیرهای مؤنث تبدیل به مذکر شد میتونیم بگیم همون مال اوناست خب می‌خاز اینم مؤنث بیاره دیگه نمماریول الله لیوس و انکم میخوااست به و یا تحکن به گفت یا تحراکن نه و هممسال. ونابرا این نمی این مطلب رو بیم و این مطلب رو قبلا ا کردیم دقیقاً کیفیت جمع آیات قرآن در دست ما نیست که آیا اینها تمام جوری جمع شده اون چرا که باید به طور قطع و یقین بگیم به ترتیب نزول قطع جمع نشده معروف و مشهور شاید این باشه که سوره اقره اولین سوره است که بر رسول خدا نازل شده این اون آخرای قرآن و همچنین اگر قرآن ها رو ملاحظه بفرمایید بلاش نوشته سوره فلان مدنی الا آیه فلان که مکی این معلوم میشه این ترتیب این آیات اینجوری نبوده به کیفیت نزول جمع شده باشه ما احتمال قوی میدیم این مطلب رو که این آیه یه جای دیگه نازد شده باشه قوازن گذشتنش اینجا احتمالش هست بنابراین یه جهت مطلب بود که قبلا نرز کرده بودیم از نظر ظاهر آیه از نظر معنا هم به زنهای پیغمبر نمیخوره این از نظر لفظ بود از نظر معنا هم این آیه به زنهای پیغمبر نمیخوره از اول آیه ها تا آخر آیه ها رو که در نظر بگیرید این آیه است که لسان ملامت و لسان بدگویی از اینها رو داره اگه طالب زن یا هستید بیاد من طلاقتون بدم اگر چنینید، اگر گناه کنید، گناهتون دو برابر دیگران عذاب داره، چنین داره، چنان داره، تو خونهاتون بشینید مثل زنان جاهلیت بیرون، نرین چنین نکنید. نوعا این آیاتی که ملاحظه میکنید زبان ملامت و سرزنش و عیدگودوی از این هاست. ولی یه دفعه این وسط این آیه یک مطلبی رو ثابت کرده، برای اینها یه مطلبی رو برای اهل بیت ثابت کرده که یک مقام است من همون شب قبلی خوندم عبارت از می شود اینکه این که کی بود اون فخر راضی بود که گفته بود این کرامتی بزرگی برای اهل بیت است. یه تحریر شما رو از هر پلیگی و زشتی دور داشتم و شما رو تاهر قرار دادم خب این از نظر معنا هم با اون آیات جور نیست اونا در مقام ملامت این زنها بودش یه دفعه این بیاد اون کرامت مراتب عالی رو برای اینها قرار بده نمیخوره به هم دیگه پس این نه از نظر لفظ این آیه با آیات قبلی و بعدش میخوره نه از نظر معنا این آیه با آیات قبلی و بعدی میخوره به قول ها وحدت سیاق اینجا جاش نیست سیاغش یکی نیست یعنی یه سوغ نیست یه جور رونده نشده اینجا جای وحدت سیاق نیست که بگیم به قرینه وحدت سیاق دلالت دارد که در حق زنهای پیغمان اینجا من ورز کردیم اون شب این راجب زنها بیوت گفته راجب اهل بیت بیت گفته میگه قرنفی بیوت کنم ولی یه نمای الله لیوزه بانکور ریسه بیت در اون چرا که در خانه های شما نازل میشه از آیات خدا به مردم بیان کنید به برسانید راجب زنها بیوت داره ولی راجب اینها بیت داره ان نه یوروری و راهی و بهبانکو و صحلل کل حال از نظر سیاه این آیه با آیات قبلی و بعدی سازگار نیست این یه مطلب تمام قبلا این کلمه رو اذ کردیم چ چراره ندارم باید این رو تکر کنم توون نمیشه از میشه قبلا این کلمه رو اصل کردیم که این آی شریفه که میگه انما یورید الله مقصود از یورید الله چیست مقصود این است که خدا میخواهد از شما که خدا از شما ای رو میخواهد که خود را از رس و پلیدی دور بدارید از شما میخواهد که تاهر و پاکیزه باشید یعنی حکم است و دستور است که اینها باید خودشون رو از گناه دور بدارن این رو بگه آیه یا نه بزرگان ما فرمودن نه آیه ای رو نمیخواد بگه آیه میخواد این مطلب رو بیان کنه که خدای تعالی خواسته است تا حالت و شما را نه خواسته که دستور داده که این کارو بکنید نه خدا خدا خدای تعالی خواسته که شما را از هر ریس و پلیدی پاک قرار داده و خواسته است این مطلب را که شما رو تاهر و پاکیزه قرار بده پاکیزه قرار دادنی دو تحت رو کم تطهی را منابر این علماء ما این چنین فرمودن این یوریدوی در اینجا اراده تکمی نیست نه اراده تشریعی یعنی قانونگذاری نیست دستور نیست بلکه خدای را خواسته میخواهد خدای تعالی و اراده کرده از خدای تعالی پاکیزگی شما را و تهارت شما را این دستور نیست چرا به چه دلیل ما رو را میگیم چرا این اراده را اراده خواستن نمی یعنی به معنی فرمون دادن و دستور چرا اینجور معنا کنیم؟ میگیم خدای تعالی خواسته یعنی اراده کرده است اراده کرده که اینجور بشه چرا اینجور معنا می‌کنیم او انما این کار رو می‌کنه انما یعنی منحصرا منحصرا لابد بعد چیزی بشه منحصره به اینا و لو پاکیزه شدن و پاکیزه امر به پاکیزگی همه شدن ما خلقتور جن و الانس الا یعبدون از همه میخواد از همه میخواد بنده خدا باشن مخالفت او را نکنن امر او را اطاعت کنند، گناهان رو ترک کنند این از همه میخواد از جن و انس میخواد پس این این نما که فقط از شما اینو خواسته و درباره شما اینو خواسته این باید یه چیزی باشه غیر از دستور دادنی که به همه دستور داده ویلا این نما میخواست کنه؟ خب شما هم مثل همه مسلمونا واجب است بر همه گناهان رو ترک کنن و از رشت و پلیدی دوری کنن بر شما هم واجبه بر همه مسلمونا واجب بود که پاکیزه باشن و شما هم واجبی این نما نمیخواست که برای برای ای رو خواستیم این منحسرن برای شما خواستیم مردم شیه است غیر از, از خواستنی که از سایرین میخواد و اون خواستنی که از سایرین میخواد است که به همه شده ولله علم ناسه جلویت من استطاع همه مردم موظفن حج کنن اگر مستطیه هستن این تکلیف به مسلمونم تعلق گرفته به کافرم تعلق گرفته به فاسقم تعلق گرفته همه موظفم این تکلیف و اما این نمایوری اگه تکلیف بود با همه یکی بود دیگه این نما نمو خواست. این هر صدی که در اینجا شده منحسرن از شما میخوای منحسرن اراده خدای تعالی این چنین تعلق گرفته که شما را پاکیزه قرار دهد این معنی مناسب با تهارت اراده نیست میخواد خدا که خدایت آلا اونچرا که میخواد حتما شدنیست و باید بشه این هم از کلمه این نما فهمیده میشه مطلبی که بعضی از رفقا اون شب هم باز گفتم ولی بعضی از رفقا اشگال کردند، بعضی یعنی شاید درست من نتوانستم تقریب کنم اون شب بعضی آمدن گفتن که پس این مطلب موجب میشود برای اینکه اینها نتوانند گناه کنند مجبور باشند در نیکی خب اینو تو که تو داره این اشکال مربوط به اهل بیت نیست. اسمت انبیاء همه ی انبیاء مقایلیم که معصومن. تو نیشیه آیلن که اینا معصومن. شاید یه عده قلیلی بگن نمعصوم. بنابراین این اشکال آیا م... اسمت که معنای این که پاکیزه است و گناه نمی کند و فرق بین اسمت و عدالت چیست عادلم گناه نمیکنه کنه گناه نمیکنه ولی فرقش این یک کلمه است که عادل میشه گناه بکنه امکان اراده گناه هست برای او ولی این آقای بزرگواری که معصومه هرگز نخواهد اراده کردیم مطلب را نه نمیتونه اراده کنه نمیکنه فرق است بین این که نمیتونه اراده کنه گناه را یا نمیتوانه ولی هرگز نمیکنه اون شب که از کردن این کلمه رو مثال خوبی بود اون آغاز شده بود واسه برای بعضی از مفاهی که نبودن میدونن گفته بود به این که اگر یک کسی یا بهش گفته بود که شما میگیم معصوم خیال گناه هم نمیکنه تو میشه خیال گناه نکنه این آقا گفته بود من یه مسئله بدی بلدم که خوب مطلبه واضح میکنه اگر میخوای برات بگم او بگو گفت میشود که آدم نجاست خودش رو بخوره اراده کنه یا نه خیالش هم نمیکنه گفت چرا خیالش هم هیچ وقت خیال بود. بود اونجوری گفته بود چون گفته بود یه چیزه بریمانه تو بگم گفته بود بگم گفت وقت خیال کرده یه خورده مثلا مثلا فضولات قدرتو بخوری حالا شما یه فضل فضله واضح دره شبه از هیچ وقت کسی خیال میکنه در عمرش که یه خورده فضله سعی بخوره میشم چیزی نمیشه نمیتونه بخوره نمیتونه قدرت داره ولی نمی‌کنه و خیالش هم نمی‌کنه. اگر کسی خدا را اونگونه که باید شناخ و فهمید بدی معصیت را و فهمید بدی گناه را که به خصوص در باب خدای تعالی یه جایه عجیب و وسیعی در مطلب هم قدرت من، هم وجود من، هم اراده من، هم خواست من همه به دست او و مال او و است که از جانب او داده شده او وقت در او ولی نعمت من هست نعمتی که او داده در راه مخالفت او مصرف کنم خود یه بدی دیگره نعمتی را که او به من داده در راه مخالفت او مصرف کنم و در حضور او مصرف کنم رباید داره که شبیه به این ای که ممیز چیزی رو میفهمه خوب و میفهمه تو حاضر نیستی در حضور او گناه بکنی خب یعلم و خائنت ال و ما تو رو این خدایی که میدان از همه چیز خب بنابر این کسی که معرفتش به خدای تعالی این گونه شد که فرمایش که امیرالمومنین که تو نازل بلاغه میفرمازد يعلم عجيج الجل و هو شفل فالوات واختلاف منان فلبهار الغمرات خدای است که رفت و آمد ماهیا رو در ته اقیانوسا میفهمه و میداند تمام صداهای درندگان رو تو بیابانها ها میداند و تمام معصیت ها را در همه خلوت ها میدونم و تمام خطورهایی که در ذهن های انسان میشه همه رو میدونم کسی که اینگونه بشناسد خدای تعالی را نعمت ها همه مال اوست و من بنده او هستم همه نعمت ها مال اوست حالا من نعمتی که او به من داده در راه مخالفت او مصرف کنم خیلی آدم بدیستن خیلی نعمتهایی که او به من داده در راه مخالفت او مصرف کنم و در حضور او مصرف کنم با اطلاع او مصرف کنم این کار رو بکنم و اگر کسی متوکر این مطلب باشه خیلی خودشو نگه میداره تو روایات دارنم برای این که مطالب بیاره خیلی خاص کننده برای شما نباشه تو روایات داره که کسی که در هر روز اول صحیفه اش صحیفه ای که ملکنگ میارن برای نوشتن اعمال بندگان اول صحیفه اش و آخر صحیف یه کار خوبی باشه خدای تعالیم وسطاشو میاموز لطف خداستی آقا وقت دیدم یه تو یکی از کتابای مرحوم سیره نتاووز شایدم تو روایات داره که مثلا این ملکین کهی نازل میشن تو یه بعضی کتاب ها دیدم بعضی از بزرگان میفهمند که اصلا که آمدن که درک میکنن این رو آن ای به مقامات عالی رسیدن حالا ما اونا رو کار نداریم ولی به هر حال میگه سید ابن تابوس میگه که اولی که وارد میشن ملکین یا اون زمانی که تو روایت داره وارد میشن میگه خطاب میکنه اکتبا بینه ای بندگان و خدا بنویسید اشهد و لا اله ایلا الله و انم محمدن سلامه و علیه و علیه و رسول الله یه چیزی دیگری علیه جملات دیگریم میگه و این اول شروع نامشه میگه بنویس خب کسی که اینجوری موازب مطلب باشه یه خیال گناه کنه. بعد وقت موزه میکنه میگه مواظب باش نباده گناه بکنه گرچه که خدای به لطف و عنایتش ولی او شاهد اعمال تو همین دو ملک بزرگوار شاهد اعمال تو هستم نه باذوقونه بکنی خدا تو قرآن یک لسان یک تق... تقریبی یک چیز خیلی شدید الان من تعلم ان الله یرا نمیدانید تو خدا میبینه این خیلی تکونده علا نمیدانی؟ نمیدانی نمی که خدا میدینه علم تعالیم وقتی من توی کتابی دیدم نوشته بود که باب الحیا خست بحث حیا بکنه قال الله تبارک و تعالی علم تعالیم و الله یرا حیا نمیدونه نمیدونی خدا میدونه و بنابراین کسی این جور معرفت داشته باشه گناه نمیکنه نه اراده نداره قدرت نداره قدرت داره سفت و س میتونه بکنه این کار رو ولیکن لیکن نمیکنه بعدی گناه رو می آه. که در حضور کی داره گناه میکنه و گناه چرارا میکنه می, کنه. می داره. وقتی آدم دقت کنه توجه نمیکنه بند خودمو از وقتی این باورش اومد که بقول اشاره شیخ سعدی میگه در ته شاهی به علم غیب بداند حاجت موری به زیر صخره یه دونه مورچه در ته چاه میدونه چی میخواد و همونی که میخواد بهش میرسونه و اگر اینجوره خب وقتی کسی که این چنین داشته باشه خدا را در حضور خدای تعالی با این حاطه و با این قدرت گناه نمیکنه علاوه بر این که متوجه آثار و نکبتهای گناه هم خوب باشه بدون چه آثاری داره بداند چه تأثیری در روح خودش و قلب خودش داره چه تأثیری در محیطش داره چه تأثیری در زن بچهش داره چه تأثیری در همه داره نیرو بلد باشه و بفهمه این دیگه خیلی خودش نگاه می‌داره بنابر این این چنین است پس نتیجه تو الان این شد نما تو به قول ها از عادت حسره و منحثرا اراده کرده که شما رو پاکیز نگه بدارد ولی پاکیز نگه داشتن سلب اراده و اختیار از معصومین نمیکنه پیغمبرا همه معصوم بودن و میتونستن گناه بکنن و نمی کردن و خیالش هم چرا در چه در نکنه مشکل وجود دیگه دوست نداره میدید خیلی چیزا رو دوست نداره شب کنید فرس خوید. مثلا نزمی میکنم خورمالو رو وضعی دوست نداره نمیتون بخوره هم به هم میکره فرس مونقیم میکنه و میزه درنش میخوره دیگه این معنی که نمی از قدرت و ارازه دوست نداره بله دوست نداره ولی مانع اراده و قدرت نمیشه قدرت داره بخوره ولی به حساب طبش چون دوست نداره خب نمی کنه خب ولی نخوردن غیر از این که نمی بخورم نه قدرت خوردن داره حالا واقعا هم اون فضل سک ولی بله خیلی خوب نیست حالا یک کسی چشمش میشه رو هم بذاره و به قول ما دندون رو جیگرد و سر این رو بذار تو دهنه نمیتونه ابدا فرقی نداره با چیزهای دیگه منطقه اون چون دوست داره براحتی بذاره این اینو باید خیلی مجاهده کنه با خودش ها بذاره تو دهنه قدرت داره یه قرد دیگه هم مثلا بلدی خودم هم فرو هم بده میتونه خراب نمیت قدرتش از بین نمیت زحمت داره برایش نراحتی داره و ما به اینجا کارمون و گفتارمون منتهی شده بود که شما قرآن رو ملاحظه بفرمایید بر قرآن حل میکنه مشکل را که چگونه معصوم مثلا گناه رو نمیخواد و نمیکنه طلبهها میگن به اینه فعل ارادی انسان اراده میکنه کند فعلی رو انجام بده اول باید تصور این کار رو بکنه بعدم فکر کنه که این کار چه نفعهایی داره و چه ضررهایی داره برای جلب نفع خودش میل و رغبت در دلش پیدا میشه یا برای دفع ضرر خودش میل پیدا میشه که این کار رو بکنه تا فلان ضرر ازش بره چرا دوام میخوره خوره مثلا اینکه که بینه مریض شده و برای اینکه این مرض از بین بره دوار رو اقدام میکنه بخوردن پس اولا باید تصور کند کار رو بعد به قول علما تصدیق کند به فایده اش که این کار چه فائده ای داره و چه ضررهایی ممکنه داشته باشه و بعدا زیاد و کم کند ها و ضررها رو یه طرفش رو ترجیح بده و برای او اگر یه طرف رو ترجیح داد او وقت میل حاصل میشه رقبت حاصل میشه که اقدام کنه به این کار خب حالا ملاحظه فرمید قرآن رو و همچنین روایات رو که اله ماشاءالله چند تشم خوندم خلاقی تعالی در قرآن فرماید به این که بله و اوحینا و اوحینا الهی هم در حق پیغمبران میگه ظاهران آیه در حق فیغمت. و الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و این تا از لکات و آبدین شاید زیل آیهی باشید وحی فرستادیم به اینا نماز خوندن را از اون هم گفتم نه وحی فرستادیم که نماز واجبه فعل نماز رو به اونها وحی کردیم و اقام از س... اوهینا فعل خیرات کارهای نیک کردن را به اونها وحی کردی نه اینکه وجوب کار نماز را نه وجوب مثلا فضل فرمانی زکات را اینا اینو نیست اینا نمیخواد بگیره. بگیر خود فعل رو وحی کردی معلوم میشه این وحی تو دل انسان انداختن؟ همونطوری که وحی رسول الله اینطوره به کیفیتی که بلند نیستین ولی در دل این انداختن این ماجرا من کثر اینا رو من روایات هم پیدا کردم و دیهایی هم نوشتم ولی حالا الان محیا هم ندارم شما رو معتل نمیکنم ولی یه دفعه آدم یه یه لفه یهو یاد یه چیزی میوفته یه دفعه یه چیزی سال قبل دیدی اون رفیقمون چه دور شد گل چه دو شد همین الان یاد اون رفیق افتادم اینو کی انداخت در دل تو با اراده و اختیار فکر کردم یاد رفیقم بیفتم نه این افتاد میوفتد پس بنابراین حضور و علم بشه شی دست اوست منفعتها و زررهاش را ای باید توجه پیدا کنه و باید بعد از توجه میل پیدا کنه تا اراده کند و اقدام کند حالا ملاحظه بفرمایید حبه و الهی کمال ایمان و زیانه فی بکن. ایمان رو در نظر شما محبوب کرد و در دل شما زینت داد در قضیه جنگ بعد میگه و یو فی به عکس مطلب و فی اعینکم لشگر دشمن رو ما در نظر شما کم جلوه دادید لشگر اونا خیلی زیاد بود لشگر مسلمان ها کم بود ولی یک کاری کردیم که شما اونا رو کم میبینیم خب اینه بعد چی کرده؟ و کی کرده این کار رو؟ خدای تعالی کرده قهران اگر من متوجه شدم لشگر اونا کمه میبینیم جلو میرم میگم بزنیم بگوشی بشون عددشون کمه ولی غله رو کنفی اعیون بله یا عدل شما رو در نظر اونا زیاد کردیم یعنی اونا می دیدن شیر مسلمان ها خیلی زیاده ترس تو می افتر. خب اینا رو کی می کنه و آیا این کار رو که می کنه حالا غیر اختیاری میشه این کار نه جنگ رو به اختیار می کنن ها کفار هم که ما رو کم می بینن اونا هم اقدامه به جنگ می کنن می اینا رو بکشیم و بعد معلوم میشه که از بین رفتن. بنابراین کار مقدماتو کی جور میکنه؟ خب حببه علیکم العیمان و زیانهو فی قلوب کم کی زینت میده ای رو؟ خدای تعالی زینت میده یه خیلی من گفتم که یه آیا میشود یه وقتی یه مادری برای حفظ بچهش این فکر تو ذهنش برسه که این بچه رو بندزم تو دریا؟ همچه فکری میشه تو کله مادری تو عالم پیدا بشه بزرمد با اوهینا اله ام موسا ان ارضعی بچه تو شیر بده فا ازا خفت فلیان ما اینو تو دل و انداختیم دیگه هر وقت ترسیدی که فرعون یا بیان این بچه تو رو بکشن چون اونا پسر بچه ها رو بکشتن هر وقت ترسیدی به اندازه شدریات ولا تخافی ولا تحزنی ناراد دوح و علیک و جائلوح و من المستلی نه ترسید بچه تو ما نگف میده داشتنش چه چجوریه عجیبه همین فرانی که همه بچه رو میکش حالا عاشق این بچه شدی. شده خود این دشمن برای این رو پرورش میده. خب یه هم و ذ و یه حب و بغض له او نیست در دل من خوب ایجاد میکنه در دل من بغض ایجاد میکنه ولی خب این چنین میشه در دل او خوب به این بچهره پیدا شده. خ خب چطور شده پیدا شده؟ به اراده خودش پیدا شد سر خودش با اراده خودش ایجاد حب در دل خودش کرد نه؟ حب و بغز بغض خب اگر این چنینه حب تاعت و بغض معصیت رو خدا در دل انسان ایجاد میکنه خدا حالا در دل آدم ایجاد میکنه نه بی خود ایجاد میکنه نه باید تو در راه بیفتی اون وقت میگاه کن ببین خدا چه میکنه با تو تو در راه بیافت تو در راه بندگی بیافت در قدم برو راه های و شباش بر تو باید اونقدر روایت داریم اونقدر مطالب عالی و نفیسی تو این روایات موجود که <تصفيق> وقتی انسان اینها نگاه میکنه میبینه در عین این, این انسان مختاره اراده داره ولی که این هوب رو دل من ایجاد کرد که این میل رو تو دل من ایجاد کرد چطور شد من به فکر این کار خوب افتادم یه دفعه یاده یاد مثلا فرقه که چند سال پیش با ما عشنا بود فرقه کرده بودم یه دفعه یادم می و خب کی انداخت دو دل این بنابراین تصورشم به دست اوست تصدیقه به فائدهشم به دست اوست میل و حب و اراده یعنی خواست من و دوست داشتن من به دست اوست بعد از تمام این حرفا که همه به دست اوست تازه اختیار دست من میخوای بکنی بکن میخوایم نکنی نکن ولی اون حب من رو دیگه را را اون حب من رو را مندازی که این کاری که دوست دارم و دوست داشته در دل من خدای تعالی دنبال این کار دارم بعد میشه در کار من حببه با الایمان ال ایمان و زیانهو فی قلوبکم و كرر اليكوم الكفر والفسوق والعصيان خدا این که نکرده که دلت از گناه بدش میاد ولی بکین کار رو میکنه در حق کی این کار رو میکنه در حق کسی که افتاده تو راه خدایا من میخوام بیام تو راه بندگی میگم که من کمکت میکنم هر گیر کردی نمیدونی خیره یا شر من نشونه دونم این خیر توست این شر تو. مَن یَتَّقِ اللَّهَ الله لَّهُ فرقان فُرْقَان یعنی چی یعنی فارق بین صحیح و باطل فارق بین حق و باطل فارق بین خوب و بد اگه آدم صد در روزگیر میکنه که این کار کار خوبیه یا کار بدیه چه آدم گیر میکنه متحیر نمیدونه چیکار کنه ولی شب خبر از میخواست به اینکه من یتق الله یجعل له فرقا یه چیزی رو تو فجعلنا له نورا يمشي به الناس آیا ندیدی و ندوشنیدی اون کسی که مرده بود ما دل او رو زنده کردیم و را میره با نور ما نور راه یعنی چی یعنی میفهمه این راه راه خوبه اون راه راه بده میفهمه خوبی و بدی رو خب اینا همونا بود که مقدمات فعل اختیاری بودا تو بودم من باید خوب تصور کنم کار رو خوبیش رو فکر کنم بعدیش رو فکر کنم امیر المومنین میبرمه صلوات الله علیه یا در عمرم اتفاق نیفتاد که برخورد کنم به یک کار خوبی و شک کنم که خوبه یا نه. خب این شک نمی کنه. این خوبی کار رو میفهمه خب این فهم اینو کی بهش داده؟ خدا ولی جلو اراده شو گرفتم نه فهمیدی خوبه بازم به اختیار خود درست میخواد خوبی رو انجام بده دل میخواد نده فهمیدی بده بازم به اختیار خودش ولی خوب اگه آدم آخره خوب فهمیده خوب حالی شده این صورت دیگه قهرم کار خوب میکنه دیگه اراده نمی کنه کاره من الان فقط آیش نیست بعضی از بزرگان می به اینکه که ولولا انسبتناک خدا می فرمد به پیغمبرش اگه ما تو رو نیر نمی داشتیم نزدیک بود که میل کنی به بعضی از کفار ولولا که لقد کت ترکنو الیهم قلیلا قلیلای مختصری به اونا میل کنی که اگر میل می کردی ازل لازغنا که ضعف الح... حیات و ضعف الممات سوملا تجدولکه علینا نصیرا حالا من یه خوض غلط گلوتی هم دارم می که میل می کردی به سر سوزنی به یه مشرکی به یه کافری میل می کردی ما دیگه تا رو رها می کردیم به تعبیر من ما تا رو داشتیم و ازل از که ذعف الحیات و المموت بعد نصیر و کمکیاری بیه برای خودت پیدا نمی کردی حالا من اون آیه بعدیش یادم نیست بفرماید به اینکه آیه بعدی اون کلمه که مقصود منه این کلمه است که در اون آیه بعد میفرماید به اینکه، و علمه که خلاصه و علمه که معلم تکن تعلم و کان فضل الله علیکه کسی را یا کبیر را یا هرچی میگه چیزایی بهت یاد دادیم که تو نمیدونسی علمی به تو دادیم که دیگران نداشتن علمی به تو دادیم که خودم نداشتی اون علم وقت بزرگان از این آیه استفاده کردن که حقیقت اسمت ناشی از شناخت سهیره خدای تعالی میبرمد ما در جایی تو رو تربیت کردیم به قول اون آقا میگه در مدرسه معالم تکن تعلم علمکه معالم تکن تعلم اونجا تو رو تربیت کردیم و این علمی که به تو دادیم تو رو نگه داشت از مثلا از اینکه میل نکنی به کسی آقا پیغمبر خیلی دوست داشت مردم مسلمون بشن گاهی این کفار می آمدن می یه کلمه ای می میگفتن. پیغمبر هم دلش مخواستی مسلمان بشه یه اگه این مسلمان می شد همه قبیلهش مسلمان می شدن همچین میل می کرد به این کلمه خب البته این هست ولی اونجا میل نکرده کسی از رو عصای اومد گفت یا رسول الله من خیلی اسلام دوست دارم ولی یه شرط داره اسلام من و اون این است که بعد از این شما فوت کردید بنده خلیفه شما باشه پیغمبر فرمید خلیفه من دستور از جانب خدا و بیا خب اینجا اونجا نبوده که اون آیه میگی ولی به هر حال پیغمبر دوست داشید و هم یه میلی می کرد که این مثلا کلمهی که گفته بد نیست یک کرش ولی خدا نگرش می دارم. خب این نگرش می یعنی نه این بود که ارادش ازش میگیره. نه بهش می فهمون. این راه راه نیست نکاتی رو که باید به بهش می فهمون. پس پس این اراده خدا از شاید به این که انما یورید الله لیوزه و انکمون رسته احلال بیت نه بحناش این است که ما اراده رو از شما گرفتیم که دیگه گناه نمیتونین بکنین نه ما جلب دادیم خوبی ها رو در مزاج شما ما به شما فهموندیم خوب و بد چیست میتونید بیابید خوب چیه و بد چیه شناخت خدای تعالی را به اون مرتبه اعلی به شما دادیم که نیست و این اختصاص دارد به اهل بیت ما کردیم از این نوام باید این مطلب رو بفهمید اینا تموم شد یک کلمه هم تموم کردم مثل اینکه که دیگه هیچ نمیشه ولی این یک کلمه هم بگم چون بعضی از رفقا اون هفته ای که قبلا خونده بودیم این کلمه رو گفتن که بعضی از سنیه ها مدعی هستند که این اینمو یورید الله لیود و انکمو روشت احلالوید مراد زنهای پیغمبر و خود پیغمبر با هم پردوشون و لذا اگر زمیر رو مذکر آورده به اعتبار پیغمبره که تو زینا بوده پس این آیه زمیرش مذکره این دلیل برای مطلب نمیشه که مراد اهل بیت یعنی مثلا علی و فاطمه و حسن و حسین سبط الله علیهم این ندلیل نیست همون زنای پیغمبره منتظ زمیر رو که مذکر ورده یعنی خلاصه پیغمبر وزن‌هاش رو ما طاهر و پاکیزه قرار دادیم خیلی اینم یک احتمال است که بعضی از سنی‌ها دادن و به ما اشکال کردن باید عرض بکنی این مطلبم مطلب صحیح و تام و این اگر بنا شد که زمیر مقصود از این زمیر پیغمبر و زنهاش باشه اگه این مراده حالا اون اراده ای که گفتیم اراده تکوینی و تشریعی کدوم مراده یعنی زنها رو خدای تعالی دستور داده است که این خود رو پاکیزه نگه دارن. فرمان داده یا نه اراده کرده وازی که پاکیزه باشن اگر دستور داده که پاکیزگی عمل کنند کمکارهای پاک، پاکیزه بکنند اگه اینه که به قول ما اراده تشریعی خب اگر این مراده باز با این نما سازگار نیست، اراده تشریعی از همه خواسته نه از دنهای از همه و اگر اراده تکوینی خواسته که خدای تعالی خواسته که اینها تاهر و پاکیزه باشند اگر با اراده تکویلی این مطلب رو خواسته معنی شنیست که زنان پیغمبرم همه معصوم هم. و اولا نه سنی نه شیعه هیچی هم مطلبی رو قائل نیست و باید عرض کنیم که حالا یکی از اون زنای خیلی در از این یکش برس کن آیش هم معصوم مثلا؟ چه بس بسا چیز طور باید وقتی آدم وارد میشه این و مخدره عرض میشه وده این که آمد پیش اون وقتی میخواست بره جنگ جمل رو را بندازه وقتی میخواست جنگ جمل رو آیشه سردسته یه بود کلحوز و غیرم از اصحاب حوزان یوار پیغمبر افتادن جلو جنگ جمل رو را بندازه آمد روای شد چیز مهمی نبوده از طرف جنسی خلاصه خیلی فوق العاده بود آمد پیش ام سلمی که بلکه ام سلمی هم گول بزنه با خودش ببره آمد سلام علیکم آقولی شما ما از آنها خیلی خوب پیغمبر بودید از همه مسنتر تر بودید پیغمبر به شما خیلی احترام می‌ذاشت چه بودین چنان بودین چران بودید و پلاسوس رو زیاد بقوله ما هندنه زیر بغلشت بذارم گفت با مقصودت با همین تاروخات چی هست؟ گفت من شنیدم صد هزار جمعیت در بصره جمع شدم و میخوان خون عثمان رو زنده کنم که عثمان رو بوسلمونا به ظلم کشتن و یک خود مظلوم کشته شده میخوان خون عثمان رو خونخواهی کنن و من می ترسم که بین امت اسلام جنگ در بگیره تو هم خوبه بیا با ما بریم که بلکه بشوانیم این جنگی رو که زمینه اش پیدا شده این جنگ نشه بین مسلمان مسلمان نگفتش که تو مخواد بری بسره و بل خب مثلا وزیفه شرعیز فرض کنید بخواد بریم بسره خب میخوای بری واسه چه کنی؟ تو چند روز پیش، یه ما پیش، دو ما پیش نبودی که داد میزندی ایوه ناس این عثمان رو بکشیدی نعسل است نعسل اسم یه یهودی بوده تو خودت مردم رو میکردی به کشتن عثمان حالا رفت دیده کجا؟ برده کجا برخواد بگید؟ مرد بری بستید خود بشه به این که خب حالا عثمان کشته شد فرض کنم از اون تو چی کار هستی؟ عثمان مال قبیله بعبد مناف بود تو مال قبیله تیمی نه قوم بخیشی با هم داری نه رسبتی نه ارتباطی به هیچ وقت تو چی کار هستی؟ وسط که خونقای عثمان میخوای بکنی و اون که مطلب رنده بودیم بود و یاد رفت رسول خدا فرمود اگر کسی با علی مخالفت کند با من مخالفت کرده اگر کسی با علی جنگ کند با من جنگ کرده داده اولش میخواستی خود انکار کنه بعد به من نشونیاشو داد و گفت بله یادم از رفیه روز رسول خدا فرمود که چه به زنهاش جمع بودن مثلا فرمود چگونه خواهد بود حال شما میبینم یکی از شماها در راهی داره میره بر خلاف رضای خدا و سجهای هوعب به او هم بر شطر سوار است و سجهای هوعب به او هم میکنم. خود خلق مسلمه میگه من خیلی مسترب شدم نکنه من باشم عرض کردم یا رسول الله نکنه من باشم از واسه به جوری به او فهموید که نتونیستی بعد دست زد پشت کتر که نکنه تو باشی به راه باطل میری اونا رو بهش گفت و گفت و گفت و خلاصی مقداری از خضاید همین روی رو خلاصی من دو خدا گوش نکرد دیگه او وظیفه شرعیست که باید بین مسلمان ها خلاصه اتفاق اتجاه بشه چی بشه چی بشه رفت دو که چه کرد و از داره چه کرد آلا من مولوش ندارم یه دونه ایش اله برای یه دونه نامه نوشت برای زید ابن از بصره زید ابن از نیکان عالم بود از مندگان خوب خدا بود از اصحاب رسول خدا بود و بعدن از اصحاب امیر المومنی سلام الله علیه که یه وقتی رسول الله صلی الله علیه علی فرمود زید و ما زید یا از ادراک ما زید نمیدونین این زید کیه این یکیسیست پیش از اینکه خودش به بهشت بره یکی از اعزائش قبل از به بهشت میره بعدا در یکی از جنگ های رسول خودش شرکت داشت یه دستش قرد شد و بعدا در همین جنگ جمل در رکاب همین بود که همین آیشه و اطباق و انصارش کشتانش خلاصمون اون بزرگواز ها یه چندین آدمی بود حالا این کلمه مقصود منه این کلمه از بسره یه نامه نوشت به این آقای زید ابن سوحان. نوش نوشت و اینکه من عایشه الا ولده آیشه نامه می نویسه به فرزندش فرزندش رو برای چی فرزند گفته چون خودات قرآن فرمود و عرضو بنکه از واجوهه امهاتکون زنان پیغمبر مادر شما هستن خیلی این مادره ولی اینه به عنوان فرزند در نامه براش می نسید یه امسلم آیشه نوشت برای فرزندش زید بن سوحان وقتی آمد این نامه به تو رسید بنشین در خانه و علی رو یاری نکن و مردم رو تبلیغ کن که یاری علی نران بنشین تا امر من بیاد برای این مرد خدایی که نامه آیشه رو عبورده بود زید بن صومان نامه رو خوند و گفتش که عمل عمرت چه به, به تو مرا امر کردی به چیزی که خدا تو را به او امر کرده است و ما رو نهی کردی از چیزی که خدا تو رو از اون نهی کرده گفتید نه یا از کمک علی نکن و بشید خدا در قرآن میبرمد و قرنفی نفی بیوت بشین این تو خانه و بیرون نرین خب شما رفتی بیرون اینی که وظیفه تو بود حالا از من میخواین میگید تو تو خانت بشین و چیزی که من معمور بودم تو میکنی و خلاف خودت نمی نمیکنی که داری خلاف میکنی خدا تو قرآن و هر مرد هم حتی لا تکونه فتنه این توقیان ویران رو با جنگ کنی تا فتنه بر پا نشود این حالا ما مقصودم هم سر این کلمه بود آیا اینجا این آیه شریفه رو بگیم که تیغمبر و از دنهای تیغمبر رو خدا پاکیزه قرار داده آیا خود پیغمبر حالا اگر مراد از یوریدو مراد اراده تشریعی باشه پیغمبر رو خدا تازه اول بسم الله عمر بخواد بکنه خدا معصوم رو قرار داده خب پس آیا آیه تشریعی که به پیغمبر نمیخوره تاهره تشریعی معصوم هستش قبل از این آیا پس اراده تشریعی که به پیغمبر نمیخوره و اگر اون وقت علاوهی بر این با لفظ انما سازگار نیست منحسرن شما را اراده تشریعی داریم این چنده نیست همه از همه میخواد و از اون طرف و از اون طرف از میشود به این که اگر اراده تکبینی مراد زنهای پیغمبر معصومن مثلا خوی خالفت هم همین آیه ها رو کردن وقرن فی بیوته کن نولاته بر رجنته بر رجال جاهلیت الاولا ما نحیه هایی که رسول خدا کرده ازش با امرهایی که اون امو سلمه رو که گفتم امو سلمه بعد از اینکه آیشه اومد پیش امو سلمه و امو سلمه اونا رو بهش گفت یه نامه نوشت برای امیر المومنین در بصره یا در کوفه بود حالا از نوشته بود یا علی این آیشه با تلحوز و به تصمیم گرفتن بیان بصره اگر خدای تعالی نهی نفرموده بود که وقع نفی بود کن نه من خودم می آمدم به کمک تو ولی الان که خدا عمل کرده تو خونه بیشینی، من فرزندم که به منزله جان خودم می فرستم که در رکاب تو باشه. خب این حساب قرآن رو کرده و اینجوری عمل داره می کنه اون یکی هم برای خودش برای اصلاح مسلمان ها داره زمد می کشه بنابراین این آیه شریفه رو نمیتونیم اختصاص بدیم به پیغمبر و زنهای پیغمبر نتیجتاً تا اینجا شاید بعضی از اشکالاتی که قبلاً مونده بود شاید برطرف شده باشد ولی که دوتا اشکالی هم هست که اگر زنده موندیم وقته دیگه انشاءالله ما اون بحث دوممون دیگه مقفولاً شده یه با چون که تا تیکه بحث رشتی بیا تیکه بحث اعتبادی اخلاقی خوب با که یه خورده اخلاقی بود دیگه الله اگر زن نموندین هفته های بعد صلاح علیه محمده محمد محمد محمد